اولوالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم بدین استئین بحث مالکیت معنوی جلسه نهم بحث ما پیرامون ادله کسان است که موافق با حقوق مالکیت فکری و معنوی تاکنون ادله متعددی در این زمینه بیان شد یکی از عدله دیگری که برای مشروع بودن این حقوق مالکیت اقامه کردهاند عبارت است از, از حق سبق گفتند که ما روایتی داریم که هر کس پیشی بگیرد به چیزی که قبلا دیگری به او پیشی نگرفته است او به اون شای سزاوارتر است لذا کسانی که صاحبان اندیشه هستند و محصولات فکری تولید کنند به دلیل اینکه پیش از دیگران موفق به خلق آثار خودشون شدند نسبت به اون آثار محق حساب می شوند و بر اونها مالکیت پیدا می کنند و در نتیجه حقوق این مالکیت هم به اونها اختصاص دارد کلا سبق و رمایه یکی از ابواب است که به همین نام شناخته می شود و این است که دو نفر با هم قرار می که مسابقه ای بدهند از مکان معینی تا منتهای معین و در امقابل عوضی قرار می دهند که هر کس این مسابقه را برد اون ایواز برای او باشد حالا سبت در چه مواردی جایز است؟ خوب این حالا موضوع مستقل نیست در حراب باشد، سیوف، ابل، فیل، خیل، بقال، حمیر یا حالا بگیم تمام ابزارات نظامی که الان در زمان ما موجوده حالا عوض چه باشد، دین باشد یا عین؟ انی عوضو کی بدهد یا خودی یکی از این دو طرفین بدهند یا یک فرد سالسی بدهد یا از بیتون مال قرار داده بشود و آیا جایزه را می شود به فرد ناظر داد که مسابقه را داره کنترل میکنه همراه با اینها میدود و احکام زیادی که دارد خب گفتن کسی که در رابطه با تعلیف خودش، اثر فکری، فرهنگی، هنری خودش سبقت گرفته بر دیگران و اولین است که این رو داره به وجود می آورد و پس بنابراین او حق دارد که نسبت به این اثر خودش شرط و شروطی بگذارد یا نه در رابطه با استفاده از او به نحوه خاص چیزی را به عنوان عوض طلب بکند خنابرا این صاحبان کارهای معنوی و فکری از این جهت دارای حق سبقند چون قبل از اونا کسی به این کار مبادرت نکرده و موفق به کش و اختراع این عمل نشده است. آمدن اشکال کردند به این مطلب که... در تولید محصولات فکری در بسیاری از موارد که اختراع کشافی به وجود میاد اینا با استفاده از علوم گذشته بوده و با کمک و استفاده از اونها آمده از این اثر جدید رو خلق کرده لذا اگر این طور باشد پس کسانی که قبلا صاحب اندیشه بودند و این مختر از اونها استفاده کرده اونام باید در این مال و در این اثر شریک باشند اگرچه که همه طولید فکسی اینطور نیستند اما بسیار از تولیدات این چنینند که با استفاده از علوم گذشته اینها به دست آمده اند و با آثاری که دانشمندان گذشته و مبتکرین و مخترین سابق به وجود آوردن لذا این حق سبب نمیتونه دلیل باشد و اگرم بخوایم بگیم همه اونها مالکند خب این اصلا قابل تحقق نیست چون صاحبان آثار گذاشته گذشته همه دار دنیا رفتن ازن اونها شرط اونها و احراز نظر اونها برای بعدی ها ممکن نیست به نظر میشه این اشکال وارد نباشه چرا؟ چون استفاده از تجربه دیگران تو همه موارد هست انسان در هر جایی که در هر موردی که وارد کاری و معامل میشه یقینا استفاده از منابع امکانات تجربه های دیگران که انسان رو وارد کار میکنن کسی که یه اثر جدید به وجود آورده اثر جدید از اون جد که اثر جدید است، این سابقه نداشته بله مواد اولیهش یا پیش در آمدها و پیش زمینهاش از گذشته گرفته اما خود خلق اثر نه این سابقه نداشته لذا نمیشه باید گفت دیگران و سابقی ها هم باید شریک باشند و اینکه ممکن نیست لذا به نظر این اشکال وارد نیست اما اشکال دیگری میشود به این وارد کرد که اون اشکال این است که سبق که در رابطه ما مسابقه دادن است حالا مربوط به حیوانهای معینی و همچنین ابزار الات جنگی که به او رمایه میگویند خوب این مربوط است به تمرین کردن مسلمونها نسبت به امور جنگی یعنی تجربه پیدا کنند تقویت بشوند و زیرکی و فراست و سلطه و مهارت پیدا کنم که در جنگ بهتر بتونم با دشمن مقابله کنم اونم با حیوانهای خاصی است نر حیوانی و اون هم با ابزارهایی که به درد جنگ بخورد لذا اگر منظور از سبق عبارت از این عقدی باشد که به عنوان عقد و سبق است که در فقه آمده او موضوعش محدود موردش کاملا معین و مشخص شده است قایتش هم مشخصه بلیزه اصلا شامل بحث ما نمی شود و اگر هم که به روایت می شود این روایت در رابطه با مباهات است. که اگر کسی امری را که در طبیعت مباه هست که او را تصر زمینی هست بله مزرعه هست یا فرض کنید منابع زیرزمینی هست اولین کسیست که اقدام کرده زحمت کشیده فعالیت کرده فکر کرده و اقدام عملی کرده چیزو به دست آورده است. نسبت به این امر مباه دیگران حقی ندارند. او اسبق از دیگران است. خب یعنی این مال او حساب می شود آیا به این معنا می توانیم بگوییم مالکیت فکری هم از موارده سبقت گرفتن به چیزی است و این دلیل بر این می شود که این شی مال او باشد و ملک او باشد و دیگران حق تصرف ندارند در این شی. مگر به ازن این مالک البته این تعلیف جدید اثر هنری فکری علمی و هرچی که هست اختراعاتی که در باب صنعت هست و امور مختلف دیگری که در عبواب مختلف باعث می شود که مخترین او رو به وجود بیاورند بله اینها رو دیگران نتوانستند بهش برسند این اثر جدید مال اوست اما آیا سب و روایت سب می این رو شامل بشود؟ روایت سب در جایی است که شیعی موجود است و تحقق دارد کسی رفته او رو اخذ کرده احراز کرده است و به دست آورده نگه میگن مال اوست اما در رابطه با اثر فکری چیز موجودی در خارجیس این آها رفته پیدا کرده و به دست آورده این تازه خودش ایجاد کرده خلق کرده به وجود آورده ولو در حد یه تعلیف چیزی را نوشته است پس این شیعه موجود رو به دست نیاورد بلکه به اذن الله چیزی را ایجاد کرد یعنی مصنوع کرد و به وجود آورد لذا این روایت سب اگر معنای ظاهری و ابتدائیش را در نظر بگیریم نه اصلا شامل بحث ما نمیشود چون است که قبلا وجود نداشته تازه به واسطه ابتکار و تلاش و تأمل و تفکر یک فردی به وجود آمده است اگر گفته بشود که این روایت که میگه هر کسی سبقت بگیره به هر چیزی که کسی دیگه به سوی سبقت نگرفته ولو شامل بحث مباحث فکری و موادیات فکری نشود اما با تنقیح منات می توانیم بگیم شامل بحث ما می شود لازم است چیزی حتما در خارج موجود باشه هر کسی چیزی الان در اختیار اوست که قبلا کسی نتونست در اختیار بگیره اما از اینکه که این شی در خارج موجود بوده است و این فرد خاص رفته در او سلطه پیدا کرده ید پیدا کرده و او رو به دست آورده یا نه خود این تازه به وجود آورده است دیگری به وجود نیاورده است این زودتر از دیگران اقدام کرد و فهمید و کشف کرد و به او رسید لذا این نوات سب شامل حال او می شود در نتیجه چون ملاک شامل بحث ما میشه معناش این می شود که این به این شه اولا است. حالا که شد اولا و سزاوارتر شد که البته این اولویت هم اولویت تعیینیست نه تقییری معنیشی نیست که دیگران میتونن بیان مالک این بشون این آقا میتونه ولی این آقا مهمتر است بهتر است و بیشتر میتواند یا زودتر میتواند غیر قولفت تعینی فقط او استحقاق تصرف و تملک این را دارد نه دیگران مثل آیه شریف که میفرمد قلول ارحامه بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله در باب عرص ما سه طبقه داریم در رابطه نسبی. نصبی مال به همه رحم که نمی رسد تا طبقه اول باشند به طبقه دوم نمیرسد تا طبقه دوم باشند به طبقه سوم نمی رسد پس منابر این, این اولویت اینجا تعیی نیست خب اگر هم بیم اینجور معنا بکنیم بعد این آقا اولاست که این اثر مال اوست این اثر مال اوست معناش این میشود که در اختیار اوست او میتونه اصلا منتشر نکنه اینو اظهار نکنه ابراز نکنه در اختیار دیگران قرار بده قرار یعنی از اینکه در اختیار دیگران قرار بده اجتناب بکنه به امتناب ورزد. و امتناب بورزد خوب این حق رو دارد مال اوست اما بحث اینه که کسی اثری رو انتشار داده پور چپش هم گرفته یا پور اختراعش هم گرفته است حالا دیگران میخوان کپی کنند تکثیر کنند، نشر کنند که اونم منافعی دارد آیا این ازن مالک اول یا ناشر را لازم دارد و حق مالی باید پرداخت کنه به او یا نه همینطور میتواند لذا این روایت هم که میگه هر کسی پیشی گفته مال اوست بر بحث ما نمیتونه منطبق باشه چون فرض اینه که تو همین چاپ کتاب یا تولید صنعتی و امثال اینها خب این موزش رو گرفته است هم به عنوان مخترع هم به عنوان تولید اول و چاپ اول به اون معروف و در بازار هم داده است حالا سر این است که میتواند چنین شرط گذاری بکند که چون این کتاب رو من نوشتم این تو فکر را من تولید کردم این صنعت را من اختراع کردم پس هر کسی میخواد اینو تکثیر کنه باید از نظر مالی چیزی پرداخت کنه به من مخترع و صاحب این اثر آیا این جایز است یا نه آیا در این صورت باسن این روایت سبق میتواند شامل این معنا بشود چون در اینجا سبقه الی شی مربوط به چیزی است که اصل شی رو به دست بیاورد بله اصل این اختراع مربوط به این آقا بوده که مال او هم هست او خب حالا چاپ هم کرده تو, تو بازار فرستاده ارائه کرده و حق مالش هم برده است صحبت سر نشر است این آیا می توانیم بگوییم چون مالک بار اول اینو نشر داده و چاپ کرده است پس نشرها و چابهای بعدی هم در اختیار اوست آیا واقعا این سبقه الی شاین میتونه رو شامل بشه یا نه ظاهره این مورد اشکال است و محل تعمل اصل اختراع مسبوق بود سبقت گرفته بود این آقا و به وجود آورد هم کرد اما حالا موجود است حالا که موجود است از اتفاق روات سبقه میتونه منطبقه بر این باشد که اگر دیگران ده نفرم تو جامعه میتونه اینو نشر بدن از من اون ده نفر یه نفر زودتر اقدام کرد و ناشر و حقوق اون ناش مال اوست نه مال دیگری دیگران هم همینطور دوباره وقتی کارو انجام میدن نسبت به افراد غیر خودشون که اقدام نکردهاند سبقه بر اونا سرق میکنه و حقوق مال هم مال همونا است پس من رو اینکه این روایت شامل اصل بحث ما بشود که حق تکثیر و تولید و چاپ و کپی رایت و امثال اینها را مختص به خودش بکند آیا با حق و صبر میتونیم ثابت کنیم یا نه ظاهراً این حق و صبر شامل بحث ما نشود یکی دیگر از ادله که باز موافقین اقامه کردن برای حقوق مالکیت فکری بحث ولایت فقیه است به این معنا که در نظام اسلامی حاکم اسلامی اختیارات فراوانی داده شده است که در بسیاری از مسائل میتواند تواند مثلا مسائل مستهدسه اعمال نظر و اعمال حق بکند و حقوقی را یا متوقف بکند یا به تاخیر بیاندازد و یا ایجاد بکند و از اونجایی که طبعیت از ولی امر و ولی فقیه و حاکم شر جزء واجبات حساب می شود مسائل حکومتی است و حاکم هرچه حکم کرد تبعیت از او لازم است بر همه لذا ولی فقیه می تواند از قانونی حمایت کند که حقوق مالکیت معنوی رو تجویز کرده است یعنی خودش چنین قانونی رو بگذراند و بگوید و اعمال بکند و جامعه ملزم بکند که این حقوق باید اجرا بشود و مورد احترام باشد و همه باید از این نظام حقوقی تبعیت بکنند آیا می شود یا نه؟ افتان آری لذا اگر ولی فقیه مسلحت جامعه رو در این ببیند که اجتماع باید ملزمه به این حقوق بشن او از ولایت خودش استفاده میکنه و این حقوق رو تثبیت میکنه بر بحث ما هم اگر ولی فقیه چاپ تالیف شخصی رو بدون اجازه او حرام اعلام میکنه. لذا یک مؤلف مصنف میتونه در مقابل اجازه چاپ آثار خودش از ناشر و افراد دیگر مبلغی رو بگیره لذا اگرم بدون اجاز ما چاپ کرد مرزم است که طبق قواعد رایج هر جامعه حق نشر او رو به مالک او... به اون مالک یا ناشر اول پرداخت بکنن گفتن ما مباردی هم داریم مثل پرداخت مالیات های غیر از خمس و زکات خب اون مالیات های متعددی هم از مردم میگیرند و به عنوان مثلا هزای سبز، نظافت محل، حالا پول آب و برق و گاز و تلفن رو نمیدونم حق سرویس و الاخر اینها جدا، بله، نه مالیات هوای سالم، مالیات پارک ماشین در بعضی از مناطق مالیات مثلا فرض کنید ورود به پارک ها و محل های تفریحی و مفرح و الاخر انواق اقسام مالیات الان رایجه در دنیا دارن میگیرند خب اینها رو حکومت ها دارن جعل می و ابداع می و اینها رو بر مردم واجب می و از مردم می گیرن خب در نتیجه اگر اینطور شد لذا در رابطه حق تب، حق تعلیف اختراعات صنعتی فکری و هنری مختلف رو می بر اساس راهکار ولایت فقیه و احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می شود اینها را تصیح کرد و مشروعیتش مشروعیتشو پذیرفت البته اون احکامی که از طرف ولی امر و حاکم شرع تنفیز می شود و به صورت عملی اجرایی می شود و باید اعمال بشود اینا همه احکام واقعی ثانوی می شود. یعنی ولیه هم حق دارد که بیاید و با استفاده از این حقی که شارع مقدس به او داده است این حق را ایجاد کند اعمال بکند و دیگران هم مزموزن باوشن. لذا حکم او می شود حکم شرعی این حقی هم که به وجود می آید از این راه میشود حق شرعی در نتیجه منافع و درآمدهایی که از این راه ممکنه به دست بیاد حق اون مؤلف و مصنف یا مبتکر خواهد بود در زمان ما البته مرحوم امام رضوان الله تعالیه با اینکه که خودشون بحث ولایت فقیر و مطلقه رو قبول داشتن و در خیلی از موارد هم به عنوان اعمال ولایت دستوراتی رو دادند اما خودشون حق مالکیت معنوی رو درست نمیدونستند این منافات نداره با اینکه ولی فقی می میتواند چنین کار رو بکنه ز خیلی از فقها در زمان ایشون امضا کردند یا مقام معظم رهبری در این زمان ایشون این حق رو کاملا مشروع و لازم میدانند و مورد تایید و تأکیدم هم قرار میدادند حالا مرحوم امام چرا این رو قبول نداشتند؟ شاید حقوق فکری و معنوی در زمانیشون ایشون گسترده و وسیع نبود و بازتاب های وسیع تو جامعه نداشت. واللا اینطور نظر دا و اللا می از این حق خودشون استفاده کنند. اینکه مرحوم امام اینها رو نامشروع میدونستند و جایز نمیدونستان نه اینکه ولی امر نمیتواند چنین بکنه. ایشون از این حقی که و این اختیاری که ولی یه امر دارد در حیقت استفاده نکردند و او رو بله اعمال نکردند به خلاف مقام معظم رهبری لذا بحث از بزرگان دیگر ما از فقهای ما هم بله اینها آمده اند و گفتند چرا حاکم حالیا یا به طور نامحدود یا به طور موقت و محدود یا نسبت به بعضی از آثار میتواند اعمال حکم بکند اعمال ولایت بکند و چنین حقوقی را مشروع بشمارد امضا بکند تأیید بکند و به قانون ارائه بدهد خب پس بنابراین این خیلی از کسایی هستن که حتی مشروعیت حقوق مالکیت فکری رو به طور کلی پذیرند اما برای فقیه جامع شرایط این حق رو قائلن که استفاده از این حقوق به طور معین برای زمان معین یا در بعضی از آثار قابل اجرا است و اشکال ندارد این تابع مسلحت سنجی خود حاکم شرع است به امام المسلمین و ولی امر که اگر غرض صحیح ببیند بتواند جعل بکند لذا ولی هم بر اساس مصالح عامه در هر موردی که اقتضا داشته باشد میتونه چنین کار رو بکن خب اینم یکی از راهایی است که به او تمسک جسته‌اند برای اثبات حقوق مالکیت معنوی عرض میکنیم بحث ما فعلا در جایی است که آیا بر اساس احکام اولیه و ادله عام و مطلقی که ما داریم آیا میتوانیم مشروعیت حقوق مالکیت معنوی رو اثبات کنیم یا نه هم از سو که به راهکار ولایت فقیه و استفاده از اختیارات ولی امر در است که بگیم به حسب حکم اولی ما چنین چیزی نداریم و نمی توانیم مشروعیت این امر رو استفاده و اثبات بکنیم اون موقع نوبت می رزد به حکم حاکم شهر که این حکم ثانوی آیا در اینجا جا دارد یا ندارد آیا با حکم ثانوی می شود این را تاییدش کرد و مشروع قانونیش کرد یا نمی شود البته این بحث مال مرحله دومه یعنی در طول ادله دیگر است یعنی بر این مبناز که اگر ادله اولی نتوانستند ثابت کنند حقوق مالکیت معنوی را ما از راه احکام ثانوی وارد میشویم. بله ولی احکام هم احکام واقعی هستند دو حکم واقعی ثانوی از اون راه ها میشویم می شویم و مشروعت ثابت می کنیم خب امده بحث در اثبات این حقوق مالکر معنوی این است که قبلا ارز کردیم بارها اولین باید ثابت بشود آیا بر این امور فکری فرهنگی و معنوی آیا مال سق میکند یا نه و ثانیان به ملکیت اینا در می آیند یا نه و سالسا آیا تمام حقوقی که مربوط به مالک هست در این نوع ملکیت ها اعمال می شود یا نه؟ اگر از همون راه رفتیم و در هر ستا جواب منفی گرفتیم یا اینا رو مال ندارستیم یا بگیم به ملکیت در نمیآید یا بگیم چنین حقوق وسیعی ثابت نمی شد که هر کسی بخواد اینا رو منتشر کنه و ترویج بکنه باید رضایت مالکو به دست بیاورد اون موقع نوبت به راهکار ولایت فقیه میرسد لذا بحث هنوز در نیمه راه است و ما نمیتوانیم فعلا اثباتا گفتیان حرف آخر رو بزنیم تا بحث مستوفاش پیش بیاید که انشالله آیا اینا اصلا مال هست یا نه اونگاه دوباره رجوع کنیم به ادله موافقین و مخالفین بر اساس اون مبانی و تحقیقاتی که انجام می شود ببینیم آی آین ادله کدوم واردن یا نه از کدوم یک می شود استفاده کرد یا نه و اگر دستمون از همه کوتاه شد اون موقع به دنبال راهکار ولایت فقیه و استفاده از اختیارات ولی یه امر و حاکم شهر خواهیم رفت حالا در رابطه با اثبات حقوق مالکت معنوی بحث هنوز ادامه داره تا پس از پایان بیان ادله موافقین انشاءالله نوبت به مباحث مقدماتی برای استنتاج نهایی این بحث برسد وصلى الله علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین